نوار با همکاری نشر قدیانی تقدیم میکند آینه دوستیابی نوشته دیل کارنگی چرا و چگونه این کتاب نوشته شد در طول 35 سال اول قرن 20 اتحادیه ی ناشران آمریکا بیش از 200000 جلد کتاب با موضوعات مختلف به چاپ رساندند که بیشتر آنها به شدت کننده بودند و بسیاری از آنها موجب خساراتی اقتصادی شدند بخش وسیعی از آنها رئیس یکی از بزرگترین نشرهای جهان برایم اقرار میکرد که شرکت او بعد از 75 سال تجربه نشر کتاب هنوز از هر هشت کتابی که منتشر میکند بابت هفت جلد آن متحمل خسارت میشوند چرا در همان شرایطی من این شجاعت را پیدا کردم که کتاب جدیدی بنویسم و بعد از اینکه آن را نوشتم چرا شما باید خودتان را به خواندن آن مشغول کنید این دو سوال پرسش‌های बेجایی هستند و من هم سعی می‌کنم جواب آنها را بدهم. از سال 1912 تلاش من این بوده که برای مردان و زنان شاغل در نیویورک دوره‌های آموزشی برگزار کنم. در ابتدای کار دوره‌های من فقط در زمینه سخنرانی در مجامعه عمومی بود. دوره هایی که تراحی شده بودند تا با تجربیات واقعی بزرگسالان را تعلیم بدهند که آزادانه فکر کنند و ایده‌هایشان را چه در مساحبه های مربوط به شغل و حرفشان و چه در برابر گروهی از هزار با شفافیت تأثیر گذاری و صبات بیشتری اظهار کنند. اما به تدریج و به مرور زمان، پیبرد این بزرگ سالان به همان اندازه که در زمینه سخنرانی موسیر نیاز به آموزش دارند در هنر زیبای رفتار با مردم، در مراودههای روزانه و نیز در برخوردهای اجتماعی باید آموزش ببینند. به مرور زمان متوجه شدم خودم هم به همان شدت به چنین آموزههایی نیازمندم. وقتی به گذشته می نگرم از این که دقت و درکم در این زمین اندک بوده متاسف می چه قدر دوست داشتم کتابی مانند همین کتاب پیش روی شما بیست سال پیش در دست رسم بود چنین کتابی برای من می توانست چه عطیه بیبه هایی باشد رفتار با مردم شاید بزرگترین مشکلی باشد که شما در حال حاضر دارید مخصوصا اگر به کار تجارت مشغول باشید چنین مسئلهی برای یک معمار، مهندس و خانم خانه‌دار نیز میتواند وجود داشته باشد. تحقیقی که چند سال پیش زیر نظر مؤسسه کارنگی و با هدف ارتقای تعلیم انجام شد، حقیقت بسیار مهم مقابل توجهی را آشکار کرد. حقیقتی که بعدها با مطالعات بیشتری از سوی مؤسسه تکنولوژی کارنگی تعیید شد. این تحقیق ها نشان می دادند که حتی در زمینه های تخصصی مانند مهندسی پانزده درصد از موفقیت اقتصادی فرد وابسته به دانش او از تکنیک و هشتاد و پنج درصد آن مرهون تواناییش در مهندسی انسانی شخصیت و توانایی رهبری و مدیریت مردم است. در طول این سالها در انجمن مهندسان فیلادلفیا و مؤسسه مهندسان الکتریکی آمریکا واحد نیویورک کلاس‌هایی از دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردم که در مجموع حدود 1500 مهندس کلاس‌های مرا گذراندند. آنها به من مراجعه می‌کردند چون پس از سال‌ها مشاهده و تجربه سرانجام پی برده بودند پردرآمدترین افراد در رشته مهندسی آنهایی نیستند که بیشترین دانش مهندسی را دارند برای مثال ممکن است فردی صرف اندر مهندسی، حسابداری، معماری یا هر حرفه دیگر مهارت داشته باشد اما درامدی که آیدش می‌شود شود جزئی و ناچیز باشد اما کسی که این توانایی‌ها را به اضافه ی توانائی اظهار نظر به احد گرفتن مدیریت و برانگیختن شور و اشتیاق در مردم داشته باشد روبه سوی درامد و سود بیشتر در حرکت است. جان دی رکفلیر زمانی که در اوج موفقیت و کامیابیش بود می گفت توانایی رفتار با مردم مانند شکر و قهوه متاع خریدنی است و من برای چنین متاعی بیشتر از هر چیز دیگر در این جهان پرداخت خواهم کرد. شاید فکر کنید دانشگاه ها در کشورهای مختلف دوره را برای تقوییت این ارزشمندترین توانایی در انسان برگزار می کنند اما حتی اگر یک دوره علمی مناسب در یکی از دانشگاه جهان برگزار می شد توجه مرا جلب می کرد و از آن در نوشتن این کتاب استفاده می کردم دانشگاه شیکاگو و آموزشگاه های متحد YMCA تحقیقی انجام دادند تا مشخص کنند بزرگسالان به مطالعه چه موضوعی علاقه مندند این تحقیق 25 هزار دولار حزینه در برداشت و مدت دو سال به طول انجامید آخرین قسمت این تحقیق در شهر میریدان ایالت کانکتیکات برگزار شد شهر مریدان به عنوان یک شهر میانگین و معمولی آمریکا انتخاب شده بود. با تمام بزرگسالان این شهر مساهبه شد و از آنها درخواست شد به پرسشنامه ای با 156 سال پاسخته هند. سالهای از قبیل تجارت یا حرفی شما چیست؟ تحصیلات شما چقدر است؟ اوقات فراغتتان را چگونه سپری می درآمدتان به چه میزان است؟ هایتان چیستند؟ چه حوزه‌هایی دارید؟ مشکلاتتان چه هستند؟ برای مطالعه به چه موضوعی بیشترین علاقه را دارید؟ آن تحقیق مشخص کرد سلامتی مهمترین موضوع برای بزرگسالان است. علاقه دوم آنها مردم هستند. چگونه مردم را درک و با آنها رفتار نمایند؟ چگونه مردم را شبیه خودشان کنند و چگونه مردم را در طرز فکر با خود همراه کنند از این رو کمیته مسئول این تحقیق تصمیم گرفت چنین دوره‌ای برای بزرگسالان شهر مریدان برگزار کنند آنها به شدت تلاش کردند کتابی کار بردی پیدا کنند تا از آن به عنوان کتاب درسی آن دوره استفاده نمایند اما هیچ نمونه‌ای نیافتند سرانجام از یکی از نویسندگان برجسته در زمینه ی آموزش بزرگ سالان پرسیدند آیا کتابی می که خواستشان را برآورده کند؟ او پاسختاد خیر من می دانم چه چیزی می خواهند. اما کتابی که به دنبالش هستند هرگز نوشته نشده است من به تجربه می دانستم گفته یا نویسنده معتبر صحیح است. چرا که خودم هم سالها تلاش کرده بودم کتابی کاربردی و سودمند درباره باره روابط عمومی پیدا کنم از آنجایی که هیچ کتابی در این زمینه وجود نداشت تصمیم گرفتم اقدام به نوشتن و استفاده از آن در دوره های آموزشی کنم و آن کتاب اکنون در مقابل شماست امیدوارم از آن لذت ببرید برای آمده سازی این کتاب هر نوشته ای که راجب این بوضوع میافتم مطالعه کردم همه چیز از قبیل ستون‌های روزنامه‌ها، مقاله‌های مجله‌ها، گزارشات دادگاه‌های خانوادگی، نفشتهای فیلسوفان گذشته و روانشناسان جدید. علاوه بر این، پژوهشگر آنگزش دیده استفاده کردم تا مدت یک سال و نیم در کتابخانه‌های مختلف به تحقیق و بررسی پردازد و هر آنچه از قلم انداخته بودم را مطالعه کند. در تک تک صفحات کتاب‌های بطور روانشناسی کاوش کند ست ها مقال از مجله های گناگون را بخاند زندگی نامه های بیشماری را جستجو کند و مشخص کند رهبران بزرگ در احسار و قرون مختلف چگونه با مردم رفتار می کردند ما زندگی نامه تمام رهبران بزرگ از جولیوس سزار تا توماس ادیسون را خاندیم به یاد دارم که فقط صد زندگی نامه از تئودور روزولد خاندیم تصمیم گرفته بودیم برای بدست آوردن هر گونه ایده ای کاربردی که در طول تاریخ کسانی برای ایجاد رابطه دوستانه و تحت تأثیر قرار دادن مردم از آن استفاده کرده اند، از هیچ وقت به هزینه ای چشم پوشی نکنیم. من خودم شخصا با تعداد زیادی از افرادی که به موفقیت هایی دست گرفته بودند مصاحبه کردم. بعضی از آنها شهرت جهانی داشتند. مختارانی همچون چون مارکونی و ادیسون رهبران سیاسی مانند فرانکلین دی روزویلت و جیمز فارلی مدیران تجاری از جمله اون دی یانگ ستاره سینما همچون کلارک گیبل و ماری پیکفورد فورد و جستجوگرانی از قبیل مارتین جانسون و سعی کردم به تکنیک هایی پی ببرم که آنها در روابطشان با دیگران از آنها بهره برده بودند از تمام این اطلاعات مطالب سخنرانی کوتاهی تهیه کردم. نام اون را گذاشتم آینه دوستیابی. این سخنرانی در ابتدا کوتاه بود، اما به زودی به کنفرانسی با یک ساعت و سی دقیقه زمان بستی افت. در طول سالها این سخنرانی را در هر دوری از کلاس‌های انستیتوی کارنگی نیویورک، برای یک بزرگ سالانه شرکت کننده ارائه می‌دادم. من سخنرانی را ارائه می‌دادم. سپس شنوندگان را با اصرار وادار می کردم به میان مردم بروند و آن را در روابط اجتماعی و حرفی خودشان تجربه کنند سپس به کلاس برگردند و در مورد تجربه شان و نتایجی که گرفته بودند صحبت کنند چه تکلیف جالبی این زنان و مردان که تشنه ارتقای نفس بودند مجزوب ایده کار کردن در لابراتوار جدیدی شده بودند اولین و تنها لابراتوار روابط انسانی برای بزرگسالان که تا آن زمان وجودیت یافته بود این کتاب مانند دیگر کتاب‌ها به طور معمولی و یک باره نوشته نشد بلکه همانطور که نوزاد رشد میکند رشد و نمو و بسط پیدا کرد کتابی که در دست شماست در همان لابراتوار رشد کرد و با همان تجربیات هزاران بزرگسال شرکت کننده در دوره آموزشی بسط یافت سالها بعد یک سری قاعده و قانون راجع به این موضوع روی کارت هایی نوشتیم که هم اندازه یک کارت پستال بودند. فصل بعد کارت های بزرگتری چاپ کردیم. سپس آنها را به یک جزوه تبدیل کردیم. بعد از آن یک سری کتابچه که هر کدام از نظر سایز و حجم بزرگتر از قبلی بودند. بعد از گذشت پانزده سال تجربه و تحقیق. سرانجام این کتاب آماده و چاپ شد. قوائدی که در این کتاب ارائه کرده ایم تئوری و احتمالی نیستند قوانین ثابت شده ای هستند که معجزه می کنند شاید باور کردنی نباشد اما به چشم دیدم که این قوانین در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی بسیار ما اثر بودند به عنوان مثال کارفرمایی که 314 کارگر را سرپرستی می کرد از جمله شرکت کننده های یکی از این دوره ها بود او سالها بدون چشم یا بسیرت در برخورد با کارگرانش آنها را محکوم کرده بود به بعد انتقاد گرفته بود و اخراج نموده بود مهربانی عبارات تشکرامیز و تشویق در زبان او بیگانه بودند بعد از آموزش و درک قوائدی که در این کتاب با آنها پرداخته این به شدت فلسفه زندگیش تغییر کرد فضای کاری در شرکت او اکنون سرشار از وفاداری، صداقت، شور و اشتیاق و روحی یک کار گروهی است. سی ست و چارده به سی و چارده دوست تبدیل شدند. او در یکی از جلسات دوره با قرور تمام می گفت. در گذشته وقتی در محوطه شرکت قدم می زدم هیچ کس با من احوال پرسی نمی کرد. کارگران همین که می دیدند می خواهم به آنها نزدیک شدم سرشان را بر می گرداندند تا با من چشم در چشم نشوند اما اکنون همه ی آنها با من دوست هستند حتی دربان نیز مرا به اسم کوچکم صدا می زند. این کار فرما به سود، لذت و چیز دیگری که بی انداز ماهم است یعنی شادی و سرور در کار و نیز در خانهش دست یافت وروشندگان بیشماری با استفاده از این قواعد درآمدشان را تا حجم بالایی افزایش دادند. بسیاری حساب کارشان را از سر گرفتند. حسابی که پیش از آن با روش‌های غلط و شیوه های پوچ به دنبال آن بودند. مدیران و رؤسا قدرت و سود بیشتری به دست آوردند. رئیسی گزارش میداد که با بکار بستن این قواعد سودی که عایدش می‌شود بسیار بالا رفته است. رئیس دیگری که در شرکت امور گاز فیلادلفیا مشغول به کار بود، موقعی که 65 سال سن داشت، با تنزل رتبه به علت بداخلاقی و ناتوانی در رهبری صحیح مردم خانه‌نشین شده بود. این دوره آموزشی نه تنها او را از خانه‌نشینی نجات داد، بلکه باعث ترفیع رتبه و افزایش درآمد او نیز شد. در موارد بیشماری زوجهایی که در مراسم زیافت پایان دوره شرکت می کردند به من می گفتند از وقتی هم سرانشان دوره آموزشی را شروع کرده زندگیشان در خانه بسیار شادتر شده است به دفعات اتفاق افتاده است که افرادی که با نتایج جدیدی که به دست می آوردند شگفت زده می شدند این دوره آموزشی معجز آسا اثر بخش بود در برخی موارد شرکت کنندگان در لحظاتی که با دیدن نتیجه کارشان به شور و شعف می رسیدند حتی در روزهای یکشنبه که روز تعطیل است با من تماس می گرفتند و در مورد موفقیتشان صحبت می کردند. آنها نمی توانستند 48 ساعت منتظر بمانند تا در جلسه کلاس درسمان در مورد آنچه برایشان روی داده است صحبت کنند. ایخیا شرکت کنندگان با سخنرانی که در این رابطه ایراد شد آنچنان تحریک شده بود که شب تا دیر وقت با دیگر شرکت کنندگان کلاس راجع به آن صحبت می کرد. ساعت 3:30 شب دیگران به خانه هاشان رفتند اما او با پی بردن به اشتباهاتش در رابطه با دیگران و با چشمانداز دنیای جدید و غنی که در برابرش گشوده شده بود چنان متحول گردید که قادر نبود تمام طول شب را بخوابد. او فردای آن شب و حتی شب بعد هم نتوانست به خوابت اما او چگونه فردی بود؟ فردی ساده و تحصیل نکرده که برای شناور شدن بر هر گونه تفکر جدیدی که در زندگیش با آن مواجه می شود آماده است؟ نه به هیچ وجه او فردی خبره هنرمند و مشهور در شهرش بود که به سه زبان کاملا فسیح و روان صحبت می کرد و از دو دانشگاه در اروپا فارق و شده بود هنگامی که در حال نوشتن این بخش از کتاب بودم نامه این یز یک آلمانی تبار به دستم رسید نجیب زاده ای که چندین نسل از اجداد دنیا کانش در دربار به عنوان افسران حرفی ارتش خدمت کرده بودند او در نامه اش که با کشتی بخار از آنسو یا اقیانو سطلس برای ام داده بود در مورد بکارگیری این قواعد گفته بود که تقریبا شور و التها و بیمذهبی بپا کرده بود شرکت کننده دیگری که آقای موسین اهل نیویورک فارق و از دانشگاه هاروارد سروتمند و مالک یک کارخانه فرش بافی بود اظهار می کرد که در چهارده هفته دوره آموزشی ما بیشتر از چهار سال تحصیل در دانشگاه هاروارد در مورد هنر زیبایی تحت تحصیل قرار دادن مردم آموخته است چرند؟ موزهک؟ خارق و البته شما آزادی تا هر صفتی که دوست دارید برای این نمونه‌ها انتخاب کنید من فقط اظهارات یک مرد محافظه‌کار و فارغ التحصیل و فوق‌العاده موفق دانشگاه هاروارد را نقل قول کردم که روز 5 شنبه 23 فوریه 1933 در باشگاه ییل نیویورک در جمعی تقریباً 600 نفر ایراد کرد بدون آن که از طرف خود هیچ تفسیر و تعبیری در مورد آن داشته باشم پروفیسور ویلیام جیمز معروف از دانشگاه هاروارد می گفت در مقایسه با آنچه ما باید باشیم فقط نصف آن اندازه بیدار و حشگاریم ما فقط بخش کوچکی از منابع فیزیکی و ذهنیمان را به کار می گیریم اگر بخواهیم مطلب را روشن کنیم باید بگوییم که یک فرد در زندگی به شدت از محدودیت هایش می شود و نیروهای متفاوتی دارد که بر حسب عادت در استفاده از آنها ناکام می ماند. نیروهایی که شما بر حسب عادت در استفاده از آنها ناکام می هدف خاص و ویژه این کتاب همین است که به شما کمک کند آن دارائی با عرضشتان که بی استفاده و راکت مندند را بشناسید تقویت کنید و از آنها سود ببرید. دکتر جان جی هیبن که تا گذشته رئیس دانشگاه پرینستون بود میگفت تحصیل در واقع همان علم توانایی رویارویی با موقعیت‌های مختلف زندگی است اگر پس از خواندن فصل اول این کتاب به طور کامل در رویارویی با موقعیت‌های زندگی کمی مجهزتر نشده بودید در آن صورت تصور خواهم کرد این کتاب در مجموع با شکست مواجه شده است همچنان که هربرت اسپنسر معتقد است هدف بزرگ تحصیل دانش نیست بلکه عمل است و این کتاب کتاب عمل است دیل کارنگی 1936